پیغام شاه پنهان با وزیر در میان شاه و او پیغام ها شاه را پنهان بدو آرام ها پیش او بنوشت شه کی مقبلم وقت آمد زود فارق کن دلم گفت اینک اندران کارم شاه کفکنم در دین عیسی فتنه ها